دوستان میخوام یه نکته رو بگم که به عبارتی کلید خود و قویترین هیبنوتیزم هایی که روی شما انجام شده توی زندگی روزمره دقیقا همینطور انجام شده اینطور شروع میکنم که هیبنوتیزم هنر این هست که با استفاده از یه روش هایی با استفاده از یه سری کارها توی ذهنتون بتونید خودتون رو به حرکت وادارید به اون انرژی و اون حسی که میخوای ببرید خب این خیلی تعریف مهمیه آیا میتونید با مرور یه سری تصاویر تو ذهنتون یا شنیدن یه سری صدا توی ذهنتون یا اصلا با خوندن یه جمله توی جهان بیرون با تغییر دادن تمرکزتون در جهان بیرون روی موضوعات مختلف روی چیزای مختلف احساساتون رو عوض کنید و اینجا خیلی سریع میگن نه من بلد نیستم بلد بودم که یپنتیزم مسلط می شدم و خودم یپتیز می کردم و پاسخ این که شما خیلی خیلی خوب بلدید ولی متاسفانه درجت منفیش یعنی شما خیلی خوب بلدید که توی ذهنتون دائما صدای یک کسی که مثلا سرتون داد زده و باش دعوا کردید رو و اون حرفش و اون جمله خاصی که بهتون برخورده رو تکرار کنید و خودتون دیوون کنید خودتون رو عصبی کنید شما خیلی خوب بلدید که آینده رو جوری منفی متصور شید که حس بد بگیرید خب حالا تنها کاری که لازم انجام اینه که این بازی رو برعکسش کنید و از برای اون چیزهای مثبتی که می‌خواید اون احساسات مثبتی که می‌خواید استفاده کنید و زمانی که بتونید اون چیزی که می‌خواید را اون تونل واقعیت که می‌خواید رو حس کنید در همین لحظه باورهاتون رو عوض کنید جوری که باور کنید همین الان چیزی که می‌خواید رو به فرض دارید یا همین الان همون جوری هستید که می‌خواید باشید اون موقع هست که شما در واقع مسلط به هستید به همین سادگی